پس از این سخنان باز میگویم که تصور نکنید به طور رسمی و ظاهری بیعت کرده ایم و آن کفایت می کند. ظاهر و پوست هیچ ارزشی ندارد. خداوند متعال به دلهایتان نگاه می کند و مطابق آن با شما رفتار می کند. دقت کنید که من با گفتن این سخن وظیفه تبلیغی خیش را انجام می دهم که گناه سم است آن را نخورید. نافرمانی از خدا مرگ ملگ است از آن دوری به دعا کنید تا قدرت به آورید. شخصی که در هنگام دعا خدا را بر همه چیز قادر نمی داند از جماعتم نیست کسی که دروغ و فریب را رها می کند از جماعتم نیست شخصی که برای دنیا حریص باشد و به فکر آخرت نباشد از جماعتم نیست شخصی که به حقیقت دین را بر دنیا مقدم نشمارد، از جماعتم نیست. شخصی که به طور کامل از هر بدی و هر عمل زشتی، یعنی شراب و قماربازی و چشم، چرانی و خیانت، رشوه و از هر استفاده نادرست از هر چیزی توبه نمی کند، از جماعتم نیست. شخصی که نماز پنجگانه را عدا نمی کند، از جماعتم نیست. شخصی که همواره دعا نمی کند و با تواضع و فروتنی خدا را یاد نمی کند از جماعتم نیست کسی که رفیق بدش را که بر او تأثیر بدی می رها نمی کند از جماعتم نیست شخصی که برای پدر و مادرش احترام قائل نیست و در امور متعارف که خلاف قرآن نیستند از آنها پیروی نمیکند و از تعهد خود نسبت به خدمت کردن به ایشان بی میورزد از جماعتم نیست. شخصی که با همسر خود و با خانوادهش با نرمش و احسان معاشرت نمی کند، از جماعتم نیست. شخصی که برای همسایه اش حتی از خوبی های کوچک هم دریخ می از جماعتم نیست شخصی که نمی خواهد گناه مجرم خود را ببخشد و انسانی که پروری است از جماعتم نیست هر مردی که به زن خود یا زنی به شوهر خود خیانت میکند از جماعتم نیست کسی که پیمانی را که در هنگام بیعت بسته بود از هر نظری می شکند از جماعتم نیست شخصی که در واقع مرا مسیح معود و مهدی معود نمی‌داند، از از جماعتم نیست شخصی که حاضر نیست در امور متعارف از من اطاعت کند از جماعتم نیست شخصی که در جمع مخالفان من می‌نشیند و حرفای آنها را تایید می کند از جماعتم نیست هر زناکار، فاسق، شرابخور، قاتل، دوست، قمارباز، خائن، رشخور غاصب ظالم دروغگو متقله و همنشینان آنان و کسی که به خواهران و برادرانش تهمت میزند و از اعمال زشت خود توبه نمیکند و مجالس بیهوده و نامناسب را رها کند از جماعت هم نیست همه اینها سم است با خوردن این سموم نمیتوانید نجات یابید تاریکی و روشنایی نمیتواند در یک جای کنار هم قرار گیرد. هر کس که طب ای دارد و با خدا صاف و یک دل نیست هرگز نمی تواند آن برکتی را به دست بیاورد که مشمول پاک دلان می شود چقدر سعادت آن کسانی که دلهایشان را از هر نوع آلودگی پاک می کنند و با خدای خود پیمان وفاداری می بندند. آنها هرگز ضایع نمی شوند. ممکن نیست خداوند آنان را رسوا کند، چرا که آنان از آن خداوند هستند و خداوند از آن آنهاست. آنها در هنگام بروز هر بلا و مصیبت نجات داده خواهند شد احمق است دشمنی که قصد مخالفت با اینان را داشته باشد زیرا اینان در آغوش خدا هستند و خدا از آنان حمایت می کند چه کسی به خدا ایمان آورده است؟ فقط این قبیل افراد ایمان آورده اند. آن شخص احمق است که با بیباکی و بدزاتی و شرارت نفس به فکر گناهکاری است چرا که خودش حلاک خواهد شد از زمانی که خداوند آسمان و زمین را به وجود آورده است هرگز اتفاق نیفتاده است که نیکان را نیست و نابود کند بلکه به خاطر آنها کارهای بزرگی را نشان می داده است و همچنان هم نشان می دهد او خدای بی نهایت وفادار است و برای افراد وفادار قدرت عجیبی را به نمایش می‌گذارد. دنیا می که آنها را ببلعد و هر دشمنی از روی عداوت شدید خیش برای آنان دندان تیز می کند. اما کسی که دوست آنهاست آنان را از هر جای حلکت باری نجات می و در هر میدانی پیروز می گرداند چقدر خوشبخت است کسی که دامن خدا را رها نکند ما به او ایمان آورده ایم و او را شناخته ایم. همان او خدای تمام جهان است و بر من وحی نازل کرده و به خاطر من نشانه‌های فوق‌العاده‌ای را ارائه داده و مرا برای این اصر به عنوان مسیح موعود فرستاده است. جز او خدایی نیست، نه در آسمان، نه در زمین. کسی که به او ایمان نمی آورد، از سعادت محروم و گرفتار خزلان است. ما از خدای خود وحی روشنی همچون آفتاب دریافت کردیم. ما او را دیدیم که خدای جهان همان خداست کسی به جز او نیست. او چقدر خدای قادر و است که ما او را یافتیم. خدایی که ما دیدیم چقدر صاحب قدرت های فوقلاده است. حقیقت این است که برای او هیچ کاری نشدنی نیست. به جز که خلاف کتاب و وعده اوست پس وقتی دعا می کنید همچون افراد ناتورالیست جاهل دعا نکنید که به خیال خود قانون طبیعتی قرار داده اند که مهر کتاب خدا آن را تایید نمی کند آنها مردود و رانده شده اند فلسه دعاهایشان هرگز مستجاب نخواهد شد آنها کورند و نه بینا آنها مرده اند و نه زنده آنان در مقابل خدا قانون ساخته و پرداخته که خود را می کنند و برای قدرت های حد و مرزی می شوند و او را ضعیف می پندارند. پس با آنها مطابق وضعشان رفتار خواهد شد. اما وقتی که برای دعا کردن بلند می شوید، بر شما لازم است که یقین و ایمان داشته باشید که خدایتان بر همه چیز قادر است. آنگاه دعایتان مستجاب خواهد شد و آن عجایب به قدرت او را خواهید دید که ما دیده ایم. و شهادت ما بر اساس رؤیت است نه بر اساس قصه و داستان چگونه دعای آن شخصی قبول شود که خدا را بر همه چیز قادر نمی و چطور وی که استجابت دعا را خلاف قانون طبیعت می بندارد به هنگام مشکلات به دعا روی بیا برد. اما ای انسان سعادتمند تو این کار را مکن خدا کسی است که ستاره های بیشمار را بدون ستون در آسمان معلق نموده است و زمین و آسمان را از نیستی و عدم کامل به وجود آورده. آیا تو نسبت به او بدگمان هستی که او در انجام کار تو آجز باشد؟ مؤلف شریف در پاورقی می نویسد: خدا در انجام هیچ کاری آجز و درمانده نمی شود. اوری کتاب خدا در مورد دعا این قانون را معرفی نموده است که خداوند متعال با انسان‌های نیک و پارسا با بینهایت رحم و شفقت و مثل دوست رفتار می‌کند یعنی بعضی اوقات خاصه خود را رها می‌کند و به دعای او گوش می‌دهد چنان که فرمود ادعونی استجب لكم». سوره مؤمنون آیه 61 و بعضی اوقات می خواهد خواسته خود را تحمیل کند همانطور که فرمود ول نبلوانکم این من الخوفی والجعو. سوره بقره آیه 156 وی بدین لحن گونه رفتار میکند تا با مستجاب کردن دعای بنده خود یقین و معرفتش را افزایش دهد و گاهی با اجرای خواسته خود خلعت رضای خود را به او ببخشد و مرتبه او را زیاد کند و با مهرورزیدن به او وی را در مسیر هدایت پیشرفت و ترقی بخشد ادامه مطلب بلکه این بدگمانی تو را محروم نگه میدارد. در خدای ما عجایبات بیشماری وجود دارند اما آنها را فقط کسانی می بینند که با صدق و وفا آن او شدند او بر دیگران یعنی کسانی که بر قدرت‌های او یقین ندارند و وفادار راستین او نیستند آن عجایباطرا را ظاهر نمی‌کند چه انسان بدبختی است که نمی‌داند خدایش یکتاست. کسی که بر همه چیز قادر است بهشت ما خدای ماست تمام لذت‌های ما در خدای ماست چرا که ما او را دیدیم و هر گونه زیبایی را در او یافتیم این گنج در خور گرفتن است حتی اگر با دادن جان و مال به دست بیاید این گوهر سزاوار خریدن است حتی اگر با از دست دادن وجودمان حاصل شود ای محرومان به سمت این چشمه بدوید که شما را سیراب خواهد کرد این چشمه زندگی است که شما را نجات خواهد داد من چکار کنم و چگونه این خبر خوش را در دلها بنشانم با چه سازی در بازارها ندا سرده که این خدای شماست تا مردم بشنون و با چه تاروی درمانش کنم تا برای شنیدن گوشهایشان باز شود اگر از آن خدا شوید مطمئن باشید که خدا از آن شما خواهد شد در حالی که خواب هستید خدا برایتان بیدار خواهد ماند در حالی که از دشمن غافل هستید خدا او را خواهد دید و نقشه او را خونسا خواهد نمود. شما هنوز نمیدانید که که خدایتان چه قدرت هایی دارد و اگر می دانستید هیچ روزی بر شما نمی که برای دنیا غمگین بشوید. آیا شخصی که داره گنج باشد به خاطر از دست دادن سکه گریه می کند و فریاد می و حلاک می شود؟ بنابراین اگر شما از این گنج خبر داشتید که خداوند در هنگام هر نیاز و حاجتی به کمکتان می آید دیگر برای دنیا از خود بی خود نمی شدید خدا یک گنج زیباس قدرش را بدانید که او در هر قدم یار و مددکارتان است شما بدون او هیچ هستید و همینطور وسایل و تدابیرتان نیز هیچ ارزشی ندارند از ملتهای دیگر تقلید نکنید که کاملا به اسباب و وسایل متکی شده اند و چنان که مار خاک می‌خورد، آنها خاک اسباب مادی را خورده اند. و چنان چه لاشخور و سگ مردار آنها بر لاشه مردار دندان کشیده اند و از خدا بسیار دور گشته اند. انسانها را پرستیده اند و خوک خورده اند و از شراب مثل آب استفاده کرده اند و به خاطر اتقای بیش از حد به وسایل مادی و عدم جستجوی قدرت و توانایی از خدا مرده اند. روح آسمانی چنان از بدنشان خارج شده که گویی پرنده ای از لانه اش پرواس می کند. به جان آنها خورده دنیا پرستی افتاده است و همه ی اعضای درونی بدنشان را بریده است. بنابراین از این خوره بترسید. من شما را از استفاده وسایل و اسباب مادی تا حد اعتدال من نمیکنم. بلکه از این من میکنم که مانند اقوام دیگر کاملا بنده و بردهی اسباب و وسایل مادی شوید و آن خدای را از یاد برید که این وسایل را فراهم میسازد اگر چشم داشتید میدیدید که همه جا تنها وجود خداست و دیگر همه چیز هیچ است شما نمیتوانید دستتان را بلند کنید و نه جمع کنید مگر به اسم او مرده معنوی به این سخن میخندد اما اگر واقعا مرده بود آن بهتر از این خندیدنش می بود بر هزر باشید از ملت های دیگر بر این مبنا تقلید نکنید که آنان در نقشه های دنیاوی خود بسیار پیشرفت کرده اند، لذا احساس کنید که باید گام به گام از آنان پیروی کنید از من بشنوید و درک کنید که آنان از آن خدایی که ما را به سمت خیش فرا میخواند سخت غافل و بیگانند خدای آنها کیست؟ انسانی آجز است: به همین علت آنها در غفلت رها شده اند. من شماره از کسب و کار دنیا من نمی کنم اما پیرو کسانی نشوید که دنیا را همه چیز خود پندا لازم است که در هر کاری اهم از دنیاوی و دینی از خدا توانایی و توفیق انجام آن را بخواهید. اما نه فقط به زبان. بلکه باید از اعماق قلب معتقد باشید که هر برکتی از آسمان نازل می شود شما زمانی نیکوکار خواهید بود که در زمان بروز هر مشکلی پیش از این که متوسل به تدبیری شوید در خود را ببندید و در آستان خداوند متعال بیفتید و بگویید که چنین مشکلی داریم فلذا به فضل و لطف خود این مشکل را حل بفرما. آنگاه فرشته روح القدس به کمکتان خواهد آمد و برایتان از غیب راهی باز می شود. به جان خیش رحم کنید و از کسانی پیروی نکنید که رابطه خود را به طور کامل با خدا قطع کرده اند و با همه وجود خیش به اسباب و وسایل مادی متوسل شده اند تا این حد که حتی برای طلب توانایی انشاالله هم نمی‌گویند. خدا چشمانتان را باز کند تا بدانید که خدایتان ستون سقف است. اگر ستون خراب شود، سقف نمیتواند بر جای خود بیستد بلکه به یک باره بر روی زمین خواهد افتاد و احتمال دارد که چند تن نیز به این خاطر بمیرند. همینطور تدابیرتان بدون کمک خدا نمیتواند پایدار باشد. اگر شما از او کمک نخواهید و کمک خواستن از او را جزء اصول خود قرار ندهید، هیچگاه موفق نخواهید شد و سرانجام با حسرت زیاد خواهید مرد. اینگونه فکر نکنید که در این صورت چرا ملتهای دیگر که حتی آن خدایی را که خدای کامل و قادرتان است نمیشناسند موفق می شوند؟ پاسخ این است که آنها به دلیل ترک خدا در دنیا مورد آزمایش قرار میگیرند گاهی امتحان خدا به این صورت است که شخصی که خدا را رها میکند و به مستی و لذتهای دنیا دل میبندد و خواستار اموال دنیا میباشد درهای دنیا را بر او باز میکند اما به لحاظ دینی کاملا مفلس و برهنه می میشود و سرانجام با افکار مادی خود می میرد و به جهنم ابدی انداخته می شود و گاهی انسان به این صورت امتحان می شود که در دنیا هم نامرادی و ناکامی نصیبش می شود این امتحان به اندازه امتحان اول خطرناک نیست چرا که فرد آزمان شونده اولی بسیار متکبر می گردد اما به هر حال هر دو فرد از گروه مقصوبون علیهم هستند سرچشمه خوشحالی واقعی خداست بنابراین وقتی این مردم از خدای حی و قیوم بیخبرند و بلکه بیخیالند و از وی روی برمیگردانند آنگاه خوشحالی واقعی چگونه میتواند نصیبشان گردد تبریک به فردی که این راز را بفهمد و هلاکش گشت انسانی که این راز را نفهمد همینطور نباید از فلاسفه این دنیا پیروی کنید آنها را با دیده ی عزت و احترام نگاه نکنید چرا که همه این کارها از روی نادانیست است؟ ی واقعی همان است که در کلامش به شما تعلیم داده است هلاک گشتند آن اشخاصی که آشق فلسفه ی و معفقند آن کسانی که در کتاب خدا به دنبال علم واقعی و فلسفه می گردند. چرا مسیر نادانی را برمی آیا میخواهید به خدا حرفها را یاد دهید چون تصور می کنید او آنها را نمیداند؟ آیا به دنبال نابینایانی می تا راه را به شما نشان دهند؟ ای جاهلان، چگونه کسی که نابیناست میتواند راه را نشانتان دهد؟ فلسفه حقیقی از روح القدس حاصل می شود که وعده آن به شما داده شده است؟ شما به وسیله روح میتوانید به آن علوم پاکی دست یابید که بیگانگان از آن عاجزند اگر چیزی را با صداقت طلب کنید سرانجام به آن دست پیدا خواهید کرد آنگاه متوجه خواهید شد که تنها این دانش است که دل را تازگی و زندگی میبخشد و به اوج ایمان و یقین میرساند کسی که خودش مرده است از چه جایی میتواند برای شما غذای پاکیزه بیاورد کسی که خودش نابیناست چگونه می توان از راه را نشانتان دهد هر حکمت پاکی از آسمان میآید بنابراین از انسانهای زمینی چه میجویید کسانی که روحشان به آسمان میرود همان وارسان حکمتند کسانی که خود به اطمینان نرسیده اند چگونه میتوانند به شما اطمینان دهند در حقیقت آنچه در ابتدا ضروری مینماید پاکیزگی دل است ابتدا صدق و صفا لازم است و پس از آن تمام این چیزها به شما داده می شود. تصور نکنید که وحی خدا تنها در گذشته نازل می و در آینده نمی تواند فرو داید. مؤلف در پاورقی می فرماید؟ شریعت با قرآن شریف به پایان رسیده است. اما نزول وحی خاتمه نیافته است. چرا که آن جان دین حقیقی است. در دینی که سلسله وحی جاری نیست، آن دین مرده است و خدا با آن دین نیست ادامه مطلب خیال نکنید که روح القدس اکنون دیگر نمی تواند نازل شود و فقط در اعثار گذشته نازل می شده است من به راستی به شما می گویم که هر دری می تواند بسته شود اما در نزول روح القدس هیچ وقت بسته نخواهد شد در دلتان را باز کنید تا در آن بعی وارد گردد. شما خود با بستن پنجره دلتان خود را از نور آفتاب دور می کنید. ای نادانان، برخیزید و این پنجره را باز کنید. آنگاه نور آفتاب خود به خود وارد دلتان خواهد شد. علا رقم این که خداوند در این زمان، راههای فیض دنیا را بر شما نبسته و بلکه بر آنها افسوده است. آیا گمان می کنید که راهای فیوز آسمانی را که در عصر حاضر به شدت به آنها نیاز دارید بر شما بسته است؟ هرگز اینطور نیست بلکه این در بسیار روشن و واضح باز شده است. اکنون در حالی که خداوند طبق تعلیم خودش که در صوره فاتحه آورده است در تمام نعمتهای گذشته را بر شما گشوده است. آنگاه چرا از دریافت آنها سر باز می زنید؟ تشنه این چشمه باشید که آب خود به خود خواهد آمد برای این شیر همچون یک بچه گریه کنید آنگاه شیر خود به خود از پستان سرازیر خواهد شد خود را شایسته رحمت خدا قرار دهید تا وی به شما رحم کند استراب نشان دهید تا آرامش داده شوید مدام گریه و فریاد کنید تا دستی دستتان را بگیرد چه دشوار است راه خدا؟ اما برای آنانی که خود را با نیت مرد در این چااله بینهایت عمیق می آسان می گردند. آنها در دل تصمیم میگیرند و میگویند، آتش را میپذیریم و به خاطر در آن میسوزیم. و سپس خودشان را در آتش می اندازند. اما پس از آن می بینید که آنجا بهشت است. به این دلیل است که خداوند میفرماید، و امّن الا باردها کان علّه ربّک حتماً مقضيّ آیه ی هفده دو یعنی ای افراد بد و ای افراد نیک از بین شما هیچ کس نیست که از آتش جهنم نیک کسانی که به خاطر خدا به میان آتش می روند نجات داده می شوند و کسی که به خاطر نفس آمارش در آتش می روان آن آتش او را خواهد بلید. پس مبارک از کسی که به خاطر خدا با نفس خود می جنگد و بدبخت از کسی که به خاطر نفسش با خدا می جنگد و با او موافقت نمی کند. شخصی که برای نفسش حکم خدا را نادیده می گیرد، هرگز در آسمان داخل نخواهد شد. بنابراین، تلاش کنید که حتی نقطه ای از قرآن شریف علیه شما شهادت ندهد و به خاطر آن مواخزه نشوید، چرا که ذره بدی هم تاوان دارد. وقت کم است و کار بسیار سریع قدم بردارید که غروب نزدیک است به چیزی که میخواهید تقدیم کنید چند بار نگاه بیاندازید مبادا چیزی را جا بگذارید و موجب زیان شود یا همه چیز کثیف و کالای بیارزش باشد و شایسته ی تقدیم کردن به دربار پادشاه نباشد شنیدن بعضی از شما احادیث را به کلی قبول ندارید اگر چنین میکنید کاملا در اشتباهید من این گونه تعلیم را نداده ام بلکه مذهب من این است که سه چیز است که خداوند برای هدایتتان به شما داده است. اول از همه قرآن است. مؤلف شریف در پاورقی می‌فرماید وسیله دوم برای هدایت سنت است. یعنی آن اسوه پاکی است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با فعل و عملشان نشان دادهاند مثلا نماز خواندند و نشان دادند که این گونه باید نماز ادا شود. و روزه گرفتند و نشان دادند که لازم است این گونه روزه گرفته شود یعنی سنت نام روش است که در آن ایشان قول خدا را در فعل خود نشان دادند وسیله زبان برای هدایت حدیث است که مبتنی بر سخنان پیامر اکرام صلی الله علیه و سلم است که پس از درگذشت ایشان جمع گردیده اند. سنت حدیث از قرآن و سنت کمتر است چون اکثر احادیث بر حسب حد و گمان هستند اما اگر سنت به همراه حدیث باشد در این صورت آن را به مرتبه یقین میرساند ادامه‌ی مطلب اول از همه قرآن است که در آن توحید و جلال و عظمت خدا ذکر شده و در آن به اختلافات بین یهود و مسیحیان پرداخته شده است چنان که این اختلاف و اشتباه وجود دارد که عیسی ابن مریم به وسیله صلیب به قتل رسیده و او مورد لعنت واقع شده و همانند سایر پیامبران دیگر نزد خدا برده نشده است. همینطور در قرآن کریم نشده است که جز خدا کس دیگری را نپرستید. نه انسان و نه حیوان، نه آفتاب و نه ماه و نه هیچ ستاره دیگری را و نه وسایل خود را و نفس خود را. پس هوشیار باشید. و هیچ هیچگامی برخلاف تعلیم خدا و هدایت قرآن بر ندارید من به حقیقت به شما میگویم شخصی که از 700 دستور قرآن شریف حتی یکی را نادیده بگیرد در نجات و رستگاری را با دست خود روی خیش میبندد قرآن شریف راهی حقیقی و کامل رستگاری را گشوده است و ما بقی همه زل و سایی آن است بنابراین قرآن شریف را با تدبر و تعمل بخوانید. و به آن عشق بورزید عشقی که نظیر نداشته باشد چرا که خداوند متعال خطاب به من فرمود الخیر کل فی القرآن یعنی هر نوع نیکی و خیر در قرآن است و این سخن درست است افسوس بر کسانی است که چیز دیگری را بر آن مقدم می شمارند سرچشمه رستگاری و نجات قرآن شریف است هیچ نیاز دینی نیست که در قرآن یافت نشود. قرآن تصدیق و یا تکسیب کننده ایمانتان در روز قیامت است. در زیر آسمان هیچ کتابی نیست که بدون واسطه قرآن به تواند شما را هدایت دهد. خدا بسیار به شما لطف نموده که کتابی مثل قرآن را به شما عطا نموده است. من به راستی به شما میگویم کتابی که بر شما خوانده شده است اگر بر مسیحیان خوانده میشد آنها هلاک نمی شدند و اگر این نعمت و هدایتی که به شما داده شده است به جای تورات به یهود داده میشد بعضی از فرق آنان منکر قیامت نمی شدند پس قدر این نعمت را بدانید که به شما داده شده است این نعمت بسیار زیباست این گنج بزرگی است اگر قرآن نازل نمیشد، دنیا مانند تکه گوشت گندیده می بود. قرآن کتابی است که تمام هدایت‌ها در مقابلش هیچند. آورنده انجیل روح القدس بود که به شکل یک کبوتر ظاهر شد. یک جاندار ضعیف و ناتوانی که گربه هم میتواند آن را شکار کند. به همین خاطر مسیحیان روز به روز در گدال ناتوانی فرو رفتند. و روحانیت و معنویت را به کلی از دست دادند چرا که تمام بار ایمانشان بران کبوتر بود اما روح القدس قرآن با چنان عظمتی ظهور نمود که زمین تا آسمان را با وجود خود پر کرده بود پس آن کبوتر کجا و این تجلیه از نیم کجا که در قرآن ذکر شده است قرآن در ظرف یک هفته می تواند انسان را پاک گرداند مگر اینکه رویگردانی روی سوری یا معنوی اعمال شود اگر از قرآن دوری نکنید می تواند شما را همچون پیامبران گرداند به جز قرآن چه کتاب دیگری در ابتدایش این دعا را به خوانندگان خود آموخته و این امید را داده است که اهدن سرعت المستقیم سرعت الذین عنم عليهم سوره فاتحه آیات 6 و 7 یعنی راه نعمتهایی را به ما نشان بده که به پیشینیان ما که رسول و پیامبر و صدیق و شهید و صالح بودند نشان دادی بنابراین از ما اراده خود را تقویت کنید و دعوت قرآن شریف را رد نکنید که میخواهد خواهد نعمتهایی را به شما بدهد که به گذشتگان داده شده بودند آیا او سرزمین بنی اسرائیل و بیت مقدس را به شما عطا نکرده که تا کنون زیر سلطه شماست؟ پس ای افراد سست اعتقاد و ضعیف الاراده آیا میپندارید که خدایتان از لحاظ جسمانی شما را قائم مقام تمام املاک بنی اسرائیل قرار داده است اما به لحاظ روحانی نمیتواند شما را قائم مقام آن املاکشان گرداند در حقیقت اراده خداوند متعال به این تعلق گرفته است که فیض بیشتری را به شما برساند خداوند شما را وارث مال و متاع جسمانی و روحانی آنها قرار داده اما تا قیامت هیچ کس دیگری را وارث شما نخواهد ساخت. خداوند هرگز شما را از نعمت وحی و الهام و مکالمات و مخاطبات الهی محروم نخواهد کرد. او تمام آن نعمتهایی را که به پیشینیانتان داده است به شما می‌دهد. اما شخصی که با گستاخی به خدا دروغ نسبت دهد و بگوید وحی خدا بر وی نازل شده در حالی که نازل نشده باشد و یا بگوید که سعادت مکالمات و مخاطبات الهیه را یافته ام، در حالی که این اتفاق نیافتاده باشد نسبت به او خدا و فرشتگانش را شاهد می‌گیرم که وی نابود خواهد شد زیرا او به خالقش نسبت دروغ داده و فریب ساخته و گستاخی و تمسخور پیش گرفته است لذا از این حالت بترسید لعنت بر کسانی که خوابهای دروغین تعریف می کنند و مدعی مکالمات و مخاطبات دروغین می شود گویا اینان در دل می پندرند که خدایی وجود ندارد اما اقوبت خداوند متعال به حتم به سراغشان می آید و روز بعدشان نمی به تعویق بیفتد بنابراین در صدق و راستی و تقوا و عشق به ذات الهی پیشرفت رفت کنید و مادامی که زنده این, این را کار اصلی خود بدانید سپس خداوند از بین شما هر کسی را که بخواهد به مکالمه و مخاطبه خود شرفیاب خواهد ساخت. اما شما خودتان نباید آرزوی مکالمه و مخاطبه داشته باشید تا مبادا به خاطر هوای نفسانیتان سلسله شیطانی شروع شود. چرا که بسیاری از افراد به موجب این نابود گشته اند. لذا پیوسته مشغول خدمت کردن و عبادت باشید. تمام تلاشتان برای این باشد که پایبند به دستورات خداوند متعال باشید و در یقین و ایمان پیشرفت کنید اما به خاطر راستگاری و نجات نه به خاطر خودنمایی. قرآن شریف بسیاری از احکام پاک را برای شما نوشته است. یکی از آنها این است که به طور کامل از شرک بپرهیزید چون مشرک از سرچشمه نجات بی‌نصیب می‌ماند. دروغ نگویید زیرا دروغ هم بخشی از شرک است. قرآن همچون انجیل توصیه نمی کند که به زنان نامحرم با چشم شهوت ننگرید و در غیر این صورت دیدنشان حلال است. بلکه میگوید هرگز خانومها را نگاه نکنید. چه با نگاه بد و چه با نگاه نیک. چرا که هر دو حالت لغز شافرین است. بلکه لازم است در مقابل نامحرم چشم به زیر باشید تا نتوانید صورتشان را ببینید. به همان اندازه نگاه کنید که انسان در آغاز بیماری آب مروارید می تواند ببیند. قرآن همچون انجیل نمیگوید که به اندازه شراب بخورید که مست نشوید، بلکه میگوید اصلا شراب نخورید وگرنه راه خدا را نخواهید یافت و او هرگز با شما هم کلام نخواهد شد و شما را از پلیدی ها پاک نخواهد کرد و میگوید این اختراع شیطان است. بنابراین از آن دوری کنید. قرآن مانند انجیل تنها نمیگوید که بدون علت از دست برادرت عصبانی نشوید بلکه میگوید نه تنها عصبانیت خود را فرو برید بلکه به وتواصو به رحم هم عمل کنید و به دیگران هم توصیه کنید که این گونه رفتار کنند سوره بلد آیه 18 مترجم ترجمه را این گونه بیان کرده یعنی به همدیگر دیگر به ترحم و مهربانی سفارش کنید ادامه یه مطلب و نه تنها خودتان رحم کنید بلکه برادرتان را هم به آن سفارش کنید. قرآن مثل انجیل نمیگوید گوید که بر هر گونه ناپاکی همسرت بهجز زنا صبر کنید و او را طلاق ندهید بلکه میگوید گوید و دیبه تولید سوره نور آیه 27 منظور قرآن این است که شخص ناپاک نمیتواند با شخص پاک زندگی کند. پس اگر همسرتان زنا نمی کند اما با شهوت به دیگران مینگرد و با آنها هم بهسر می شود و مقدمات زنا را فراهم می کند و اگرچه این عمل تکمیل نمی یابد و برای دیگران به خود را ظاهر می کند اما در واقع مشرک و مفسد است و از خدای پاکی که شما به او ایمان دارید بیزار است در این صورت اگر دست از سر کارهای خود برندارد می توانید او را طلاق دهید چون وی در اعمال خود از شما جدا شده و دیگر عضوی از جسمتان نیست اینک دیگر جایز نیست که با کمال بیغیرتی زندگی خود را با او ادامه دهید چون اکنون او عضوی از جسمتان نیست بلکه عضوی کثیف و متعفن است و لایق بریده شدن است نگذارید اعضای دیگرتان را هم کثیف کند و باعث مرگتان شود قرآن مثل انجیل نمیگوید که هرگز قسم نخورید بلکه از سوگندهای بیهوده باز می دارد گاهی اوقات سوگند که فیصله دادن به قضیه میباشد خداوند نمیخواهد هیچ ملاکی را از بین ببرد چون با این کار حکمت او زیر سوال میرود این طبیعی است اگر انسانی در امری که اختلافی در آن وجود دارد شهادت ندهد در چنین حالتی برای فیصله نیاز به شهادت خداست و قسم یعنی شاهد گرفتن خدا و قرآن مثل انجیل نمیگوید که هیچ وقت با ظالم مبارزه نکنید بلکه میگوید و جزاء ثیyat مثلها فمنعفها و اسلحه علی الله سوره شورا آیه چهل و یک یعنی کیفر بدی کیفری همسان آن است اما اگر شخصی عفت کند و گناه را ببخشد و طرف مقابل بر اثر این اف اصلاح شود و نه گستاختر در این صورت خدا از او راضی است و پادشان را به او خواهد داد. بنابراین از نظر قرآن اف در هر جایی قابل ستایش نیست و انتقام در هر جایی ستوده نمی باشد. بلکه موقعیت شناسی مهم است. باید به سهره انتقام و اف با رعایت محل و مسلحت عمل شود. نه به گونه بی بند و بار. و مقصود قرآن هم همین است. قرآن مثل انجیل نمیگوید که دشمنان خود را دوست بدارید، بلکه میگوید لازم است از روی نفسانیت هیچ کسی را دشمن خود نسازید. همدردی و دلسوزی تان برای عموم باشد. اما کسی که دشمن خدایتان و دشمن پیامبرتان و دشمن کتاب الله باشد، وی دشمن شما نیز است. اما آنان را نیز از دعوت و دعا محروم نسازید. باید با اعمال آنها دشمنی داشته باشید، نه با ذاتشان. و تلاش کنید که آنها اصلاح شوند. خداوند در این باره میفرماید ان این الله یعمرو بلعدلی بل و لحثانی و اده زلقربه. سوره 91 یعنی خدا از شما میخواهد با تمامی انسانها بر اساس عدل رفتار کنید. و برتر از آن به کسانی که هیچ کار خوبی در حق تان نکرده ان نیز خوبی کنید و سپس بالاتر از آن با مخلوق خدا چنان هم دردی کنید که گویا جز از خانواده واقعی آن هستید آن چنان که مادر با فرزندانش برخورد می کند در لطف و احسان جنبه از خودنمایی مخفی است و گاهی اوقات کسی که احسان می کند منت نیز می گذارد. اما کسی که همچون مادر بر اساس فطرت نیکی می هرگز خود نمایی نمی کند. بنابراین آخرین درجه در نیکی آن درجه از نیکی است که به طور فطری صورت گیرد و نیکی کننده هماننده مادر باشد. این آیه تنها در مورد مخلوق نیست بلکه درباره خدا هم صدق میکند. کند. رعایت عدل خدا این است که نعمتهای او را به یاد آوریم و از فرمانهایش پیروی کنیم. و احسان کردن به خدا این است که طوری به ذات او یقین داشته باشیم گویا او را میبینیم و اطایز القربا به خدا این است که او را نه به خاطر تمعب بهش یا ترس از جهنم ابادت کنیم بلکه اگر فرض کنیم نه بهشتی وجود دارد و نه جهنمی باز هم تفاوتی در میزان محبت و اطاعت از او ایجاد نشود در انجیل نوشته شده است که برای کسانی هم برکت بخواهید که شما را لعنت کند. اما قرآن میگوید که شما از روی هوای نفسانی خود هیچ اقدامی علیه او انجام ندهید برای انجام هر کاری از دل خود که خانه تجلیات خداست فتوا بخواهید که با چنین شخصی چگونه برخورد کنی بنابراین اگر خداوند بر دلتان فرود آورد که این شخص لعنت کننده مستحق ترحم است و در آسمان مورد لعنت نیست آنگاه شما هم او را لعنت نکنید و اگر بر دلتان بی اندازد که بر او در آسمان نیز لعنت فرستاده شده، در آن صورت برایش برکتی نخواهید. همانطور که هیچ پیامبری برای شیطان برکت نخواسته است و هیچ پیامبری نیست که بر او لعنت نفرستاده باشد. اما در لعنت کردن کسی عجله نکنید چرا که اغلب گمانهای بعد دروغ است. و اغلب لعنت ها به خود لعنت کننده باز می گردن. با احتیاط قدم بردارید. و پیش از انجام هر کاری جوانه و آن را بررسی نمایید و از خدا کمک بخواهید چرا که شما نابینا هستید نکند که عادل را ظالم بپندارید و صادق را کازب و اینگونه خدای خود را ناراحت سازید و تمام اعمال نیکتان هدر روند همینطور در انجیل گفته شده است که کارهای نیکو خود را در مقابل مردم برای ریاکاری انجام ندهید اما قرآن میگوید که همه کارهای خود را به دور از چشم مردم انجام ندهید. بلکه زمانی که ببینید پنهان کردن اعمال نیکو برای نفستان بهتر است، آنگاه برخی از کارهای نیکو را بر حسب مسلحت در خفا از مردم انجام دهید. اما وقتی که ببینید نشان دادن اعمال نیکو خیری برای مردم عادی دارد، بعضی از اعمال خود را آشکارا انجام دهید. تا در عوض آن دو پاداش به شما داده شود و مردم ضعیفی که برای انجام کار نیک جرأت ندارند به پیروی از شما کارهای نیک را انجام دهند. بنابراین آنچه چه خداوند در کلام خود می‌فرماید، سرا و علانیه سوره رد آیه 23 یعنی هم پنهانی نیکی کنید و هم آشکارا. با آن این حکمت را بیان فرموده است که نه تنها با گفتار مردم را به نیکی تشویق کنید بلکه با عمل هم انگیزه بدهید چرا که گفتار در همه جا تأثیر گذار نیست بلکه تأثیر نمونه و الگوی عملی در اکثر مواقع بسیار بیشتر از گفتار است همچنین در انجیل آمده است که برای دعا کردن به داخل کلبه خود بروید اما قرآن یاد می دهد که همیشه به دور از چشم مردم دعا نکنید بلکه در مقابل مردم و همراه با برادرانتان در جمع به طور آشکارا نیز دعا کنید تا اگر دعای مورد قبول واقع شد موجب پیشرفت ایمانی آن جمع شود و در افراد دیگر نیز اشتیاق و رغبت به دعا پیدا گردد همینطور در انجیل آمده است که به این صورت باید دعا کنید که ای پدر ما که در آسمان هستی نام تو مقدس باشد و پادشاهی تو برقرار گردد به گونه ای که آسمان طبق رضایت تو عمل کند زمین نیز مطابق رضایت تو عمل کند نان هر روزه ما را امروز به ما بده و همانطوری که ما خرصهای من را می بخشیم، تو قرضهایت را به ما ببخش و ما را در آزمایش قرار نده بلکه ما را از بدیها نجات بده زیرا پادشاهی و قدرت و جلال همیشه از آن توست اما قرآن می گوید این گونه نیست که زمین توهی از تقدیس الهی است. بلکه در روی زمین هم تقدیس خدا به عمل می آید تقدیس الهی فقط در آسمان نیست چنان که خداوند متعال می فرماید و ام من شیء الا يسبح بحمده سوره بنی اسرائیل آیه 45 یسبحوا لله ما في السماوات و في الارض سوره جمعه آیه دو، یعنی هر ای از زمین و آسمان خداوند متعال را تحمید و تقدیس می کند. و هر آنچه در آنهاست مشغول تحمید و تقدیس اوست، است کوها مشغول ذکر اویند، دریاها مشغول ذکر اویند، درختان مشغول ذکر اویند و بسیاری از درست مشغول ذکر اویند و شخصی که از روی قلب و زبان خود مشغول ذکر او نیست و در مقابلش فروتنی نمی قضا و قدر با انواع و اقسام شکنج و عذاب وی را وادار می سازد تا در برابر او فروتنی پیشه کند و آنچه در مورد فرشتگان در کتاب خدا نوشته شده است که آنها بینهایت از خدای تعالی اطاعت می همین تعریف نیز در مورد هر ذره زمین هم در قرآن شریف آمده است که هر چیزی در حال اطاعت از خداست بدون امرش حتی یک برکم نمی نمیتواند روی زمین بیفتد و بدون حکم او هیچ دارویی نمیتواند شفا بخش باشد و نه غذایی به انسان میسازد هر چیزی با نهایت تزلل و عبودیت به درگاه خدا افتاده است و غرق در اطاعت و فرمان برداری از اوست هر ذره ای از کوه ها و زمین و هر قطره ای از دریاها و اقیانوس و هر برگ درختان و گیاهان و هر ذره ای از انسان و حیوانات خدا را می و او را اطاعت می کنند و مشغول تحمید و تقدیس او هستند به همین دلیل خداوند فرمود به لله ما فی السماوات و ما فی الارض سوره جمعه آیه 2 یعنی همانطور که هر چیزی در آسمان مشغول تسبیح و تقدیس خداست در زمین نیز هر چیزی در حال تسبیح و تقدیس اوست پس آیا اکنون در زمین تحمید و تقدیس خدا یافت نمی شود؟ چنین کلمه ای نمی تواند از دهان یک عارف کامل خارج شود بلکه در زمین بعضی از چیزها از احکام شریعت اطاعت می کنند و بعضی تابع احکام قضا و قدر هستند و بعضی از هر دو اطاعت می کند چه ابر باشد چه هوا چه آتش و چه زمین همگی مشغول اطاعت و تقدیس الهی هستند اگر انسانی از احکام شریعه سرکشی می کند در مقابل آن تابع حکم قضا و قدر الهی می باشد هیچ کسی خارج از این دو حکومت نیست انسان یوق یکی از این دو حکومت را به حتم برگردن خود دارد آری اگرچه به لحاظ صلاح و فساد دل انسان ها، غفلت و ذکر الهی یکی پس از دیگری بر روی زمین غلبه می کند، اما این جزر و مد بدون حکمت و مسلحت خدا و بگونه ای خود به خود اتفاق نمیافتد. در زمین، تغییراتی مطابق خاست خداوند روی می دهد. بنابراین، دوره هدایت و زلالت مانند اختلاف روز و شب طبق قانون و ازن خدا اتفاق میافتد. نه تو خود به خود. با این وجود هر چیزی صدای او را میشنود و پاکی او را یاد می کند. اما انجیل میگوید گوید که زمین خالی از تقدیس خداست. و در جمله بعدی دعای انجیل به علت آن اشاره شده. و آن این است. که او هنوز پادشاهی خداوندی را به دست نیاورده لذا به سبب نداشتن حکومت و نه به دلیلی دیگر خواسته او به طوری که در آسمان نافذ است در زمین نمیتواند اعمال شود اما تعلیم قرآن کاملا برعکس این بینش است در قرآن واضح و روشن گفته شده که هیچ دوزد و قاتل و زناکار و کافر و فاسخ و سرکش و مجرمی نمی تواند هیچگونه کار بدی انجام دهد تا زمانی که از طرف آسمان به او اختیاری داده نشود پس چرا گفته می شود که پادشاهی آسمانی در زمین وجود ندارد آیا یک شخص مخالف با به تصرف در آوردن زمین می تواند اجرای دستورات خداوند شود سبحان الله هرگز اینطوری نیست بلکه خدا خودش در آسمان برای فرشته ها قانونی جدا ساخته و در زمین نیز برای انسان ها قانونی جداگانه و نموده است خداوند متعال در پادشاهی آسمانیش به فرشته هیچ اختیاری نداده بلکه اطاعت را در فطرتشان به ودیعه گذاشته است آنها اصلا نمی توانند مخالفت کنند و دچار خطا و نسیان شود اما اختیار پذیرش یا عدم پذیرش به فطرت انسانی داده شده است و چون خدا این اختیار را داده است، لذا توانیم بگوییم که به علت وجود انسانی فاسق پادشاهی خدا بر روی زمین از بین رفته است، بلکه در هر صورت پادشاهی خدا همچنان برقرار است. آری، قوانین تنها دو گونه‌اند. یکی قانون قضا و قدری که برای فرشته های آسمان است، که آنها اصلا توان انجام بدی ندارند و قانونی دیگر بر روی زمین برای نوع انسان در رابطه با قضا و قدر خداست و آن این است که از آسمان به نوع انسان اختیار انجام اعمال بد داده شده است اما چنانچه انسانها از خدا قدرت و توانایی به طلبند یعنی استغفار کنند آنگاه ضعف آنها با تایید روح القدس میتواند رفع شود و می توانند از ارتکاب گناه در امان بمانند چنانچه رسولان و پیامبران خدا در امان میمانند و اگر گناهکاران استغفار کنند استغفار کردنشان باعث می شود که از نتایج بد گناه یعنی از عذاب در امان بمانند چرا که با آمدن نور ظلمت جایی برای ماندن ندارد مجرمانی که استغفار نمی کنند یعنی از خدا طلب توانایی نمی کنند اقوبت جرائم خود را می بینند. در اصر حاضر هم تا اون به عنوان کیفر بر روی زمین آمده است و افراد سرکش دارند بر اثر آن حلاک می شوند. پس چرا گفته می شود که پادشاهی خدا بر روی زمین موجودیت ندارد؟ ممکن است دعال کنید. که اگر پادشاهی خدا بر روی زمین نیز موجودیت دارد آنگاه چرا مردم مرتکب گناهان و جرایم میشوند؟ گناهان و جرایم نیز در زیل قوانین قضا و قدر خدا قرار دارند لذا اگرچه آن مردم از قانون شریعت خارج می اما از قانون تکوین یعنی قانون قضا و قدر نمی خارج گردند بنابراین چگونه می گفت که مجرمان زیر یوغ سلطنت الهی نیستند؟ ببینید در همین کشور هند بریتانیا دزدی می شود قطر هم اتفاق می افتد و هر گونه مجرم زناکار و خائن و رشوه بگیر و غیره نیز وجود دارد اما نمی توان گفت که در این کشور دولت انگلیسی وجود ندارد دولت موجودیت دارد اما دولت از روی امد وزن قوانین سخت را صلاح نمی داند. چرا که با ترساندن زندگی مردم دشوار میگردد اما اگر دولت بخواهد که با قرار دادن تمامی مجرمان در زندان سخت و آزاردهنده جلوی جرمشان را بگیرد به سهولت میتواند از ارتکاب جرایم جلوگیری کند و یا اگر در قانون مجازاتهای سختی را در نظر بگیرد میتواند جلوی جرایم را بگیرد از این امر می‌توانید این موضوع را نیز درک کنید که این همه شراب که در این کشور نوشیده می‌شود و تعداد زنان فاحشه در حال افزایش است، به حوادث دزدی و قتل صورت می‌گیرد. بدین دلیل نیست که دولت انگلیسی در اینجا وجود ندارد، بلکه نرمی قانون دولت موجب افزایش جرایم شده است. دولت اختیار دارد با وضع قوانین سخت گیرانه و در نظر گرفتن مجادات سنگین از ارتکاب جرائم پیشگیری کند. پس در حالی که وضعیت سلطنت انسانی گونه است در مقابل سلطنت خداوندی ناچیز است. آنگاه سلطنت خداوندی چقدر صاحب اختیار و اقتدار است؟ اگر همکنون قوانین خدا سخت گیرانه شود و هر زناکاری مورد اصابت سائقه قرار بگیرد و هر دزدی به مرزی دچار شود که دستهایش افونت کرده و جدا گردد و هر سرکش و منکر خدا و منکر دین از تاوم بمیرد در آن صورت پیش از به پایان رسیدن یک هفته تمام دنیا درست کار و خوشبخت می گردد بنابراین پادشاهی خدا زمین برقرار است اما نرمی قوانین آسمانی تا این میزان آزادی داده است که مجرمان به زودی معاخزه نمی شوند. آری کیفر هم داده می شوند زلزله ها می آیند ها می کوه های آتش فشان مثل آتشبازی شعلور می شوند و جان هزاران نفر را می گیرند کشی غرق می شوند ها نفر جانشان را به وسیله قطار از دست می دهند توفان ها می آین. خانه ها خراب می شود مارها میگزند درندگان تکه پاره می کنند وباه ها می آیند و موجب فنا ساختن نه یک در بلکه هزاران در می شوند که قانون طبیعت خدا برای کیفر مجرمان مقرر نموده است پس چطور می توان گفت که پادشاهی خداوند روی زمین وجود ندارد حقیقت این است که پادشاهی اش وجود دارد و بر دستان هر مجرمی دستبند زده شده و بر پاهایش زنجیر بسته شده است اما حکمت الهی به قدری قانون خود را نرم کرده است که این دستبند و زنجیرها فل اثر خود را نشان نمیدهند. اما اگر انسان تا آخر دست از کارهای بد بر ندارد سرانجام وی را تا جهنم ابدی میبرند و به عذابی مبتلا میسازند که با آن وی نه زنده میماند و نمی می رد. خلاصه دو قانون وجود دارند یک قانون مربوط به فرشته ها یعنی اینکه آنها فقط برای اطاعت خلق شده اند و اطاعت محض آنها ویژگی فطرت روشنشان است آنها نمیتوانند گناه کنند اما در نیکی هم نمیتوانند پیشرفت داشته باشند قانون دوم مربوط به انسان هاست و آن اینکه در فطرت نوع انسان ودیعه شده است که می گناه کنند. همچنین می تواند در نیکی نیز پیشرفت داشته باشد. این دو قانون فطری غیرقابل تغییرند و همانطور که فرشته نمی تواند انسان شود، انسان نیز نمی تواند تبدیل به فرشته گردد. این دو قانون نمی توانند تغییر یابند. از لا و غیر قابل تبدیل هستند. به همین خاطر قانون آسمان نمی تواند در زمین نافذ شود و قانون زمین نیز نمی تواند روی فرشته ها عملی شود. اگر خاکاری های انسان با توبه به پایان برسد، می میتواند انسان را از فرشته ها هم بهتر سازد چرا که در فرشتهها خاصیت پیشرفت وجود ندارد. گناهان انسان با توبه بخشیده می شوند. گفتنی است که حکمت الهی سنسه خطاکاری را در برخی افراد باقی گذاشته تا آنها با گناه کردن به ضعف خود پی ببرند و سپس با توبه کردن بخشیده شوند؟ این قانون برای انسان از گردیده است و فطرت انسانی نیز به این قانون نیاز دارد. سهم ویژگی فطرت انسانی است، نه ویژگی فطرت فرشته. بنابراین، قانونی که مربوط به فرشته هاست چگونه میتوان در میان انسان ها جاری کرد؟ خطا اگر زعفی به خداوند نسبت داده شود. تنها نتایج قوانین است که بر روی زمین جاری می شود. نعوذ بالله آیا خدا ضعیف است که پادشاهی و جلال قدرتش فقط محدود به آسمان باشد یا این که خدای زمین خدای دیگر است که برخلاف خدای آسمان ها بر زمین تصرف دارد و حکومت می کند شایسته مسیحیان نیست که بر این حرف تأکید کنند که پادشاهی خدا تنها در آسمان برقرار است و هنوز بر زمین جاری نشده است همچنین اینان قائل به این امر نیز هستند که در آسمان چیزی نیست بنابراین روشن است که اگر در آسمان چیزی وجود نداشته باشد که پادشاهی خدا در آنجا برقرار شود و به علاوه پادشاهیش بر زمین هنوز برقرار نشده است، در این صورت گویا پادشاهی خدا در هیچ جایی وجود ندارد. گذشته از این ما داریم پادشاهی خدا را بر روی زمین به چشم خود میبینیم. طبق قانون او، عمرهایمان تمام تمام میشود و حالاتمان تغییر میابند و سطحان نوع رنج و رفاه را میبینیم. به دستور خداوند هزاران نفر می میرند و هزاران نفر به دنیا می آین. دعاها مستجاب می شوند. نشانه ها به ظهور می رسند. زمین به فرمان او هزاران نوع گیاه و میوه و گل به وجود می آورد. اکنون آیا همه اینها بدون پادشاهی خدا اتفاق می افتد؟ اجام آسمانی به یک صورت و منوال هستند. تغییری و تبدیلی که به واسطه به تغییر دهنده پی برده شود به چشم نمیخورد اما در زمین هزاران تغییر و انقلاب و تبدیلی رخ می دهد. هر روز میلیون ها نفر می میرند و میلیون ها نفر به دنیا می آین. و از هر جنبه و از هر نظر تصرف خالق مختدری حس می شود. پس آیا پادشاهی خدا هنوز به زمین نرسیده است؟ انجیل هیچ دلیلی نیاورده است که چرا پادشاهی خدا هنوز بر روی زمین برقرار نشده است. البته تمام شب دعا کردن ایسا برای نجات خود در باغ و با وجود مورد قبول شدن آن چنانچه در ابرانیان آیه 5 تا هفت نوشته شده است قادر نبودن خدا بر نجاتش به گمان مسیحیان می تواند دلیلی بر برقرار نبودن پادشاهی خدا بر زمین باشد. اما ما شاهد آزمایش های سختری از آن نیز بوده ایم و در آنها نجات هم یافته ایم. لذا ما چگونه میتوانیم توانیم منکر پادشاهی خدا باشیم. آیا پرونده قتلی که برای کشتن من ساخته بودند و مارتین کلارک در دادگاه کاپیتان داگلس مطرح کرده بود، کمتر از پرونده‌ای بود که صرفاً به خاطر اختلاف مذهبی از طرف یهود در دادگاه پیلاتوس دایر شده بود؟ اما چون خداوند متعال همانطوری که پادشاه آسمان است، پادشاه زمین نیز هست، لذا از قبل درباره این پرونده به من اطلاع داده بود که چنین آزمایشی نزدیک است. و این خبر را نیز به من داده بود که من را از این اتهام تبرعه خواهد کرد این خبر به صدها نفر قبل از معود داده شده بود و سرانجام هم تبرعه شدم این پادشاهی خدا بود که من را از این پرونده نجات داد که با همدستی مسلمان و هندوها و مسیحیان بر علیه من دایر شده بود و نه تنها یک دفعه بلکه من بیش از بیست بار پادشاهی خدا را بر روی زمین دیده هم. و به سبب آن ناچار شدم که به این آیه ایمان آورم که له ملک السماوات والارض سوره حدید آیه سه یعنی پادشاهی خدا هم بر زمین و هم بر آسمان برقرار است و به این آیه ایمان آورم که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فيكون سوره یاسین آیه هشتاد و سه یعنی تمام زمین و آسمان از او اطاعت می کنند و هنگامی که بخواهد کاری صورت گیرد دستور می دهد که بشو و آن بلا فاصله انجام می گیرد و سپس می فرماید: والله علی امره، ولكن اكثر الناسي لا یعلمون سوره یوسف، آیه 22. یعنی خدا بر ارادهش غالب است. اما اکثر مردم از قهر و جبروت خداوند بیخبرند خلاصه این دعای انجیل است که انسانها را از رحمت خدا ناامید می و مسیحیان را نسبت به ربوبیت و افاظه و روز جزا و سزا گستاخ و بیباک می سازد و مادامی که پادشاهیش بر زمین برقرار نشود او را توانه کمک کردن بر روی زمین نمی دانند. اما در مقابل خداوند در قرآن شریف به مسلمانان دعایی یاد داده است و این مطلب را بیان می که خداوند بر زمین مثل مردم برکرار شده از سلطنت بیکار نیست بلکه سلسله ربوبیت و رحمانیت و رحمیت و مجازاتش بر روی زمین جاری است و او توانایی کمک کردن به بندگانش را دارد و میتواند مجرمان را با خشم و خود حلاک سازد آن دعا این است الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك <نصعين> اهدنا اهدينا <الصراط> المستقيم صراط الذين عن <عمد> عليهم غير المغضوب عليهم ولا الزالين سوره فاتحه آيات دو إلى حافد ترجمه فقط خداست که لایق تمام سطایش هاست یعنی هیچ نقصی در پادشاهی او نیست و هیچ حالتی برای خوبی های او وجود ندارد که امروز نباشد و فردا حاصل شود و هیچ کدام از پادشاهی پادشاهیش بیکار نیست. او تمام عوامل را بدون عوض می و در پاداش اعمال رحمت می کند. در زمان تعیین شده جزا عقاب می دهد. فقط او را می‌پرستیم و تنها از او کمک می‌خواهیم و دعا می‌کنیم که راه تمام نعمت‌ها را به ما نشان دهد و ما را از راه‌های غضب و تاریکی دور نگه دارد این دعایی است که در سوره فاتحه است با دعای انجیل کاملا تضاد دارد چرا که در انجیل از پادشاهی خدا بر روی زمین انکار شده است. لذا بر اساس انجیل بر زمین نه ربوبیت خدا کاری می کند و نه رحمانیت و نه رحمیت و نه قدرت جزا و سزا. پادشاهی خدا هنوز بر روی زمین برقرار نیست. اما از سوره فاتحه میفهمیم فهمیم که پادشاهی خدا بر روی زمین وجود دارد. به همین خاطر تمام لوازم مورد نیاز پادشاهی در سوره فاتحه ذکر شده بدیهی است که پادشاه باید دارای چنین صفاتی باشد که توانایی پرورش مردم را داشته باشد در سوره فاتحه با به‌کار بردن اصطلاح رب العالمین این صفت به اثبات رسانده شده است بر این اساس دومین صفت پادشاه این ماید باشد که وی تمام وسایل لازم را که رعایت برای آبادی خود لازم دارند در ازای دریافت هیچ گونه خدمتی و تنها از روی شفقت و ترحم پادشاهانه برایشان فراهم نماید و کلمه رحمان این صفت را ثابت کرده است سومین صفتی که باید در پادشاه باشد این است که کارهایی که رعایت به خودی خود نتوانند به انجام برسانند وی در انجامشان به آنها کمک کنند و با کلامی رحیم این صفت را به اثبات رسانده است. چهارمین صفت برای پادشاه این است که توانایی پاداش دادن و تنبیه کردن را داشته باشد تا اختلالی در سیاست مدنی ایجاد نشود و با کلامی مالک یوم الدین این صفت نشان داده شده است. خلاصه کلام این است که در سوری مزبور تمام مواردی که برای پادشاهی لازم است گفته شده است و از آن استنتاج می شود که بر روی زمین هم ربوبیت و رحمانیت و رحمت خدا در جریان است و سلسله امداد و سلسله کفر نیز وجود دارد خلاصه هر آنچه برای پادشاهی خدا لازم است در زمین موجود می باشد و حتی ذرهی هم خارج از حکم او نیست هر جزا و سزایی به دست اوست. اما انجیل این دعا را یاد می دهد که هنوز پادشاهی خدا در میانتان برقرار نشده است. و برای برقراری آن دعا کنید و از خدا بخواهید تا برقرار شود. به عبارت دیگر خدای آنها هنوز پادشاه و مالک زمین نیست. فلزا از چنین خدایی چه امیدی می توان داشت. بشنوید و متوجه شوید که معرفت بزرگ این است که ذره زر ذره زمین آنگونه زیر سلطه قدرت خداست که ذره زر ذره آسمان تحت پادشاهی اوست و همان گونه که تجلی عظیم و شنی در آسمان وجود دارد در زمین نیز تجلی عظیم و شنی وجود دارد تجلی آسمان که امری اعتقادی است علا رغم این که مردم عادی نه به آسمان رفتن و نه آن را مشاهده کردند، اما تجلی پادشاهی خدا در روی زمین در واقع خیلی روشن و واضح به چشم هر انسانی می خورد شریف در پاورقی برقی می نویسد آیه الانسان سوره احزاب آیه هفتادسه نیز دلالت بر این دارد که مطیع حقیقی خدا همان انسان است که اطاعت خود را تا درجه عشق و محبت میرساند و با تحمل هزاران بلا پادشاهی خدا را بر روی زمین ثابت می کند. پس این اطاعت است که با درد دل همراه است. فرشته ها چگونه می توانند آن را انجام دهند؟ ادامه مطلب هر انسانی هر قطر هم که ثروتمند باشد برخلاف خاستگی خود جام مرگ را می نوشد. پس ببینید که چگونه تجلیه این شاه حقیقی بر زمین مشهود است. اگر دستور او برسد، هیچ کس نمی تواند مرگ خود را حتی برای یک ثانیه هم به تعویق بیندازد. چه کسی دچار مرز بد و غیر قابل درمانی شود، هیچ پزشکی نمی تواند وی را درمان کند. پس تعمل و تعمق کنید که با روز تجلیه پادشاهی خدا بر روی زمین تاجه میزند، که هیچی از دستوراتش نمیتواند رد شود. پس چطور میتوان گفت که هنوز پادشاهی خدا بر زمین برقرار نشده است و در آینده در یک زمانی برقرار می شود؟ ببینید در همین عصر حاضر دستور آسمانی خدا با تا اون زمین را لرزانده است تا برای حقانیت مسیح معودش نشانه ای باشد. پس چه است که بتواند این بیماری را برخلاف میلش دور سازد؟ بنابراین چگونه میتوانیم بگوییم که پادشاهی خدا هنوز بر زمین برقرار نشده است؟ آری یک آدم خلافکار مثل زندانی ها بر روی زمین است زندگی میکنند و دوست دارد که هرگز نمیرد اما پادشاهی واقعی خدا او را از بین میبرد و سرانجام گرفتار چنگ ملک الموت میشود پس چگونه می توانیم بگوییم که پادشاهی خدا هنوز در روی زمین برقرار نشده است؟ دقت کنید که هر روز به حکم خدا ده میلیون نفر بر روی زمین می میرند و ده میلیون نفر به دنیا می آیند و ده میلیون نفر به دستور او از به فقیر و از فقیر به ثروتمند تبدیل می شود پس چگونه می توانیم بگوییم که فرشته ها فقط در آسمان زندگی می کنند اما در واقع بر روی زمین هم انسان ها زندگی می کنند و هم فرشتهها، ها فرشتهها، کارگر و خادم سلطنت خدا و محافظ کارهای مختلف انسان ها هستند و همیشه در حال اطاعت از خدایند و گزارشات خود را برای او ارسال می کنند پس چگونه می توانیم بگوییم پادشاهی خدا بر روی زمین وجود ندارد بلکه خداوند بیشتر از همه با پادشاهی زمینی خود شناخته شده است چرا که هر کسی میپندارد که راسای آسمان مخفی و غیرقابل مشاهده است بلکه در حال حاضر تقریبا تمام مسیحیان و فلاسفه اصلا منکر وجود آسمان ها شده در حالی که اناجیل تمام مدار پادشاهی خدا را روی آسمان قرار داده است در روی زمین که در واقع کره زیر پای ماست بر روی آن هزاران امر غذا و قدر خدا به ظهور می رسد و این موضوع را قابل درک می سازد که تمام این تبدیلات و تأخیرات و آفرینش و فنا به دستور مالک خاص روی می دهد. پس چرا گفته می شود که پادشاهی خدا روی زمین وجود ندارد؟ بلکه ارائه چنین تعلیمی در زمانی که مسیحیان کاملا منکر آسمانها ها شده اند بسیار نامناسب می‌نماید. چرا که در دعای انجیل پذیرفته شده است که پادشاهی خدا بر روی زمین وجود ندارد و از طرفی دیگر محققان مسیحی با صدق دل پذیرفتن. یعنی از تحقیقات جدید خیش نتیجه گرفتند که آسمان چیزی نیستند و اصلا موجودیت ندارند پس این نتیجه حاصل می شود که پادشاهی خدا نه در آسمان هاست و نه در زمین مسیحیان منکر آسمان ها شده ان و انجیل پادشاهی خدا را بر روی زمین رد کرده است پس به گفته آنها خدایشان نه پادشاهی زمین را دارد و نه آسمان را اما خدای عز دو ما در سوری فاتحه نه آسمان را ذکر کرده است و نه زمین را و با گفتن رب العالمین ما را از این حقیقت آگاه ساخته است که در هر جایی که جمعیتی وجود دارد مخلوقی هست چه در اجسام و چه در ارواح خالق و پروردگار آنها خداست که در هر لحظه آنها را پرورش می‌دهد و نیازهای مناسب حالشان را تأمین می‌کند و در هر زمان و در هر لحظه سلسله ربوبیت، رحمانیت، رحیمت و جزا و سزایش ادامه دارد. مؤلف شریف در رابطه با هر جایی که جمعیتی وجود دارد در پاورقی می‌نویسد دقت بفرمایید که این کلمه ی رب چه کلمه جامعی است. چنانچه ثابت شود که در اجرام فلکی هم جمعیتی وجود دارد، در آن صورت آن جمعیت ها هم زیر پوشش این کلمه قرار خواهند گرفت. ادامه مطلب به خاطر داشته باشید که منظور از عبارت مالک یوم الدین در سوری فاتحه تنها این نیست که در قیامت جذاب و سزا داده می شود. بلکه در قرآن کریم بارها و کاملا به وضوح بیان شده است که قیامت زمان مجازات است و نوعی مجازات از همین دنیا آغاز می شود که آیه ی یجعل لکن به آن اشاره می کند سوره انفال آیه مترجم ترجمه را این گونه نوشته اگر تفای خدا پیشه کنید، او بین شما و دیگران تفاوت را نشان خواهد داد ادامه مطلب حال این نکته را هم گوش بدهید که در دعای انجیل نان به صورت روزانه خواسته شده است چنان که آمده است نان روزانه ما را امروز عطا کن اما جای تعجب اینجاست کسی که پادشاهی هنوز بر زمین برقرار نشده است چگونه می تواند روزی بدهد حال که تمامی زمین های کشاورزی و تمام میوه ها خود به خود به بار می نشینند و باران خود به خود می بارد پس خدا چه اختیاری دارد که به کسی روزی دهد؟ بنابراین، آن زمان که بادشاهیش در روی زمین برقرار شد باید از او روزی طلبید. اکنون که او هیچ دخالتی در امور زمین ندارد و آن زمانی که تصرف کامل روی این ملک پیدا کرد، میتواند به کسی نان دهد. فعلا حتی خواستن چیزی از او هم نارواست. سپس این سخن که همچنان که ما قرض خود را به بدهکاران میبخشیم، تو هم قرض و بدهی خود را به ما ببخش نیز درست نیست. چرا که او هنوز پادشاهی زمینی ندارد و مسیحیان که هنوز از وی چیزی نگرفتند، پس صحبت از کدام قرض است؟ فلزا لزومی ندارد که از چنین خدای توحیدستی بخواهید که قرضش را ببخشد. و همینطور نیازی نیست که از او بترسید چرا که پادشاهیش هنوز بر روی زمین وجود ندارد. و تازیانه حکومتش نمی تواند وحشت ایجاد کند او قدرت و توانایی ندارد که بتواند مجرمی را به سزایش برساند یا مانند قوم نافرمان موسا با تا اون نابودشان سازد یا به سان قوم لود آنها زنگ ببارد یا با زلزله یا سائقه اسیانگران و نافرمانان را نابود کند چرا که هنوز پادشاهی خدا بر زمین برقرار نشده است پس چون خدای مسیحیان آنگونه ضعیف است که پدرش بود و نمیتواند در امور دخالت کند همانطور که پدرش نمیتوانسته است پس درخواست چنین دعاهایی از او بینتیجه است تا از وی بخواهیم من را ببخشد او چه وقت قرض داده بود که بخواهد حالا ببخشد زیرا هنوز پادشاهی او بر روی زمین به وجود نیامده است پس در حالی که پادشاهی او روی زمین نیست آنگاه رویش و نمو گیاهان نیز به حکم او نبوده است و چیزهای زمینی مال او نیستند بلکه خود به خود به وجود آمده اند و حکم او در زمین نافذ نیست و در حالی که او پادشاه و فرمان روای زمین نیست و هیچ گونه آسایشی به حکم شاهانه او نیست پس او نه اختیار سزا دادن را دارد و نه اختیار حق دادن را بنابراین برگزیدن چنین خدای ضعیفی برای خود و داشتن امیدی از او بر زمین کاری احمقانه است چون پادشاهی او بر زمین نیست اما سوره فاتحه به ما یاد می‌دهد که خداوند بر روی زمین همان اندازه قدرت دارد که در عوالم دیگر دارد. در آغاز سوره فاتحه آن صفات مقتدر و کامل خداوند ذکر شده اند که در هیچ کتاب دیگری در دنیا به این روشنی بیان نشده اند. چنان که خداوند می‌فرماید او رحمان است، رحیم است، مالک یوم الدین است. و پس از آن تعلیم داده است که در درگاه او دعا کنیم و دعایی که یاد داده است همانند دعای آموخته مسیح نیست که تنها درخواست نان روزانه شود بلکه هر استعدادی که از ازل در فطرت انسان نهاده شده و اتش و تشنگی رسیدن به آن ودیه گذاشته شده است در دعایش یاد داده است و آن دعا این است که اهدن از المستقيم المستقیم سرعت اللذین عنمت علیهیم سوره فاتحه آیات 6 و 7 یعنی ای مالک و صاحب آن صفات کامل و فیض دهنده ای که هر ذره از تو پرورش مییابد و از رحمانیت و رحیمیت و قدرت جزا و سزایت نف نفع میبرد ما را وارث درست کاران گذشته قرار بده و هر نعمتی که به آنها دادی به ما نیز عطا کن و از ما محافظت نما که با نافرمانی از تو مورد غضبت واقع نشویم و از ما محافظت کن تا با بی‌نصیب ماندن از کمک تو گمراه نشویم. آمین. حال پس از تمام این تحقیقات، فرق بین دعای انجیل و دعای قرآن آشکار شده است که انجیل وعده برقراری پادشاهی خدا را برای آینده می‌دهد، اما قرآن می‌گوید پادشاهی خدا در میانتان وجود دارد و نه فقط وجود دارد، بلکه به طور عملی فیضش نیست به شما می‌رسد. خلاصه در انجیل فقط وعده داده شده است اما قرآن نه تنها وعده می دهد بلکه از آن می دارد که پادشاهی برپا شده است و فویوزش را نیز نشان می دهد. اکنون فضیلت قرآن از اینجا روشن می شود که او خدایی را معرفی می کند که در زندگی این دنیا منجی و آرامش بخش درست کاران است و هیچ نفسی بینصیب از فیض او نیست. بلکه فیض ربوبیت و رحمانیت و رحیمیتش بر اساس خود شخص جاری است. اما انجیل خدایی را معرفی میکند کند که پادشاهیش هنوز بر روی زمین برقرار نشده است و فقط وعده برقراری آن را میدهد. حال فکر کنید که عقل کدام یک را قابل پیروی می حافظ شیرازی درست گفته است که مرید پیر مقانم زمن مرنجه شیخ چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد